عامل مهم مدیریت جهادی عبارت است از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی اعتماد به کمک الهی اینی که من نام مبارک امام باغر علیه السلام منام مبارک امیر را و تبریک ایام مبارک رجب را در تلیعه عرایزم عرض می کنم به خاطر اینه در همه کارها توکل به خدای متعال و کمک به استمداد از کمک الهی اعتماد کنیم به کمک های الهی شما از خدای متعال کمک میخواهید خواهید ها به روی شما باز می شود و من یتق الله یجعل و من قومن لا احتسب این رزقی که در این آیه گفته شده است و در آیات دیگر این رزق به شکل‌های مختلفی به من و شما میرسه گاهی شما ناگهان در ذهنتون یک چیزی برق میزنه میدرخش راهی باز میشه این رزق الهی است در یک برهه فشار ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود میاد این همون رزق الهی است و من یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب بنابراین اعتماد به کمک الهی